آن روز یک شنبه که پا به سکوی ایستگاه قطار وینسور مونترال گذاشتم، کتو شلوار گاباردین قهوهی روشنی به تن داشتم که خیلی به آن میبالیدم. پیراهن فلانل آبی آسمانی پوشیده بودم. کراوات نخی زرد یک دستی زده بودم. کفش های سفید و قهوه‌ای به پا داشتم. کلاهی حسیری سرگذاشته بودم که از آن بابی بود و اندکی برای سرم کوچک بود. و سیبیلم که سه هفته ای می میشاد گذاشته بودم بلند شود قهوه ی مایل به قرمز بود آقای آقایشتو در آنجا چشم را هم بود مرد ریزندامی بود که قدش به یک متر پنج سانتی متر نمی رسید پیراهن کتانی نسبتا کثیف و کفش مشکی پوشیده بود و کلاه شاپای مشکی مشکی سرگذاشته بود که لباش دور تا دور برگشته بود با هم که دست دادیم نه لبخند زد و نه. تا آنجا که به یاد دارم لام تا چیزی گفت. چهرش به نوشته نازکی فرانسوی کتابهای فامانچای ساکس رومر نفوذ ناپذیر بود. نمیدانم به چه دلیل نیشم تا بناگوش باز بود. نه تنها نمی توانستم نیشم را ببندم، بلکه نمی شد ای که صورتم را پوشانده بود محو کنم. با اتوبوس از ایستگاه وینسار چند کیلومتر باید می تا به مدرسه میرسیدیم. فکر نمی کنم آقای یوشوتو در سرتاسر سر این را پنج کلمه صحبت کرد. من در برابر سکوت او یا اینطور بگویم، به سبب سکوت او به حرف افتاده بودم و در آن حال پایم را از روی قوزک روی زانو گذاشته بودم و کف دستم را یک ریز روی جورابم می گذاشتم تا عرقش گرفته شود. به نظرم رسیده بود که لازم است نه تنها دروغ‌های پیش را درباره خیشوندی با دومیه، درباره زنه در و درباره ملک کوچکم در جنوب فرانسه تکرار کنم بلکه به آنها شاخ و برکم بدهم دست آخر برای اینکه خود را از این خاطره های دردآور که به خصوص کم کم داشتن کم و بیش دردآور میشدند آسوده کنم موضوع صحبت را به صمیمیترین و عزیزترین دوست پدر و مادرم پابلو پیکاسو کشاندم و هر جا از او اسم می بردم میگفتم پیکاسو بیچاره باید بگویم که پیکاسو رو از این نظر پیش کشیدم که خیال می کردم مشهور ترین نقاش فرانسوی در امریکا من کانادا را رو به روشنی جزئی از آمریکا می و برای آگاهی آقای یوشوتو با دلسوزی به ظاهر طبیعی نسبت به آن قول از پا افتاده گفتم که خوب است چند بار به او گفته باشم آقای پیکاسو می دانی به کجا می و استاد در پاسخ این پرسش کوبنده عرض اتاق کارش را آهسته و متفکرانه می پیمود تا نگاهی به گراور کوچک تابلوی بازیگران خود بیاندازد. و عظمت از دست رفته اش را به یاد آورد از اتوبوس که پیاده می شدیم برای آقای یشتو توضیح دادم که بدبختی پیکاسو این بود که به حرف هیچکس، حتی صمیمیترین میترین دوستانش گوش نمی داد در 1939 مدرسه دوستداران استادان دیرین که در حقیقت ای بود در طبقه دوم یک ساختمان سه طبقه بسیار بدنما در وردون یا بخشی از مانترال بود که از بخش‌های دیگر جذابیت کمتری داشت مدرسه درست در بالای یک فروشگاه لوازم ارتوپدی بود یک اتاق بزرگ و یک دستشویی خیلی کوچک بیچفت و بست مدرسه دوستداران و استادان دیرین را تشکیل می‌داد اما لحظه‌ای که پا به آنجا گذاشتم آنقدر به نظرم دلپذیر آمد که حیرت آور بود دلیلش هم این بود که از چهار دیوار اتاق مربیان تعداد زیادی از آثار قاب شده‌ی آقای یوشوتا که همه با آبرنگ کشیده شده بود آویزان بود من هنوز هم نگاه یکی از آنها را که از شاهکارهای کامل و تحوار آمیزی بوده که در عمرم دیده‌ام در ذهن مجسم می‌کنم توی نقاشی مرغابی سفیدی در دل آسمان آبی بسیار کمرنگی در پرواز بود و آبی آسمان یا بهتر گفته شود ذات آبی آسمان در پرهای پرنده منعکس بود. تابلو درست در پشت میز خانم یوشوتا تابیزان بود. همین تابلو و نیز یکی دو تابلو دیگر با کیفیتی نسبتاً همانند بود که اتاق را دلپذیر کرده بود. وقتی من با آقای و آقای یوشوتا پا به اتاق مربیان گذاشتیم خانم یوشتو که ابریشمی مشکی و قرمز روشن زیبایی پوشیده بود و با جاروی دست اتاق را میروبید زنی موخاکستری بود که یک سر و گردن از شوهرش بلندتر بود و طرح چهرش او را بیشتر مالایایی نشان میداد تا ژاپنی. جارو را کنار گذاشت و جلو آمد. و آقای یوشتو به کوتاهی ما را به هم معرفی کرد. خانم یوشتو از هر جهت مانند آقای یوشتو به نظرم نفو ناپذیر آمد نمیگویم نفوز نابذیرتر. سپس آقای یوشتو پیشنهاد کرد که اتاقم را به من نشان بدهد و به فرانسه توضیح داد که پسرش به تازگی آنجا را خالی کرده و برای کار در یک مزرعه به بریتیش کلمبیا رفته است. بعد از سکوت طولانی در اتوبوس راضی بودم که کم یا زیاد صحبت می کرد و من نسبتم با سرزندگی گوش می ددم. همین که خواست از خایی کند که اتاق پسرش صندلی ندارد و کف اتاق مخده گذاشته اند درآمدم گفتم که همین هم از سرم زیاد است راستش فکر می کنم گفتم که از صندلی بدم میآید آنقدر خودم را گم کرده بودم که حتی اگر میگفت اتاق پسرش را سیلاب گرفته و شبانه روز دو وجب آب تویش ایستاده احتمالا فریادی از شادی سر میدادم و میگفتم دوچار پادرد عجیبی هستم که باید روزی هشت ساعت خیز بماند. سپس مرا از یک پلکان چوبی که قش قش می کرد به طرف اتاقم راهنمایی کرد. در راه با تأکید او گفتم که تعالیم بودا بودارا مطالعه کردم. بعدها پی بردم که او و خانم ایشوتو هر دو پروتستان بودند. آن شب دیر وقت که بیدار توی رخت دراز کشیده بودم و غذای جاپانی ملایایی خانم یشتا هز نشده روی دلم سنگینی میکرد و مثل آسانسوری در طول جناق سین بالا و پایین میرفت، درست از آن سوی اتاق ناله خانم یا آقای یشتا بلند شد. ناله بلند، نازاک و بریده بریده بود و بیشتر به ناله ی کودکی غیر عادی و تره یا بچه جانوری ناهنجار می ماند تا آدمی بزرگ سال. این نمایش شبهای بعد هم ادامه پیدا کرد. من هیچگاه پی نبردم که ناله کدام یک از آنهاست رسد به اینکه علتش را دریابم. وقتی در حالت تاقباز ناله ها برایم تحمل ناپذیر شد از رخت خواب بلند شدم. دمپایهایم را پوشیدم و از توی تاریکی رفتم و یکی دو ساعت چار زانو روی مخده کف اتاق نشستم و سیگار کشیدم. ته سیگارها را رو روی پاشنه دمپایی خاموش میکردم. و آنها را توی جیب بالای پیجام هم می گذاشتن. خانم و آقای ایشتا سیگار نمی‌کشیدند و در هیچ جای خانه زیر سیگاری به هم نمی‌رسید. نزدیکی‌های ساعت پنج صبح به خواب رفتم. ساعت شش و نیم بود که آقای ایشتا در اتاقم را زد و گفت که صبحانه ساعت شش و چهل و دقیقه آماده است. از توی درگاه اتاق پرسید که خوب خوابیدم یا نه؟ و من گفتم بله، سپس لباس پوشیدم، و شلوار آبیم را تن کردم که فکر می کردم برای یک مربی در روز گشایش مدرسه مناسب است و کروات قرمز سولکا که مادرم به من داده بود بستم و بیان که دست و صورتم را بشویم با عجله از راه را گذاشتم و پا به آشپزخانه خانم آقای یشتا گذاشتم خانم یشتا پشت اجاق بود و ماهی صبحانه را آماده می کرد. آقای یوشوتا زیر زیرپی راهن قیمت فروشگاه بیویسی و شلوار پوشیده بود. پشت میز آشپ خانه نشسته بود و روزنامه ژاپنی میخواند. سرسری برایم سرتکان داد. هر دو از هر وقت دیگر نفو تر به نظر میرسیدند. هنوز ننشسته بودم که کمی ماهی توی بشقابی جلوی من ریخته شد. و مقدار بسیار کمی هم ساست دلم بسته آنطور که توی چشم بزند دور تا دوران اضافه شد. خانم یشتا به انگلیسی تلفظش بکنه اینا منتظر جذاب بود. گفت که اگر تخم مرغ را ترجیح می دهم برایم آماده می کند. اما من گفتم نه نه خانم متشکرم گفتم که هیچگاه لب به تخم مرغ نمیزنم آقای یشتا روزدامه اش را به لیوان آفخاری من تکیه داد. و ما هر سه در سکوت بخوردم مشغول شدیم. یعنی آنها می خوردن. و من در سکوت در فاصله‌های معین می‌بلعیدم پس از صبحانه همانجا توی آشپزخانه آقای یوشوتا پیراهن بدون یقه پوشید و خانم یوشتو پیشبندش را باز کرد و ما هر سه پشت سر هم اما نامرتب از پلکان پایین رفتیم و وارد اتاق مربیان شدیم در آنجا 340 پاکت بزرگ دربستو شکم داده به صورت توده نامرتب روی میز پهن آقای یوشتو ریخته بود پاکت ها به نظر من مانند شاگردان جدید مدرسه ظاهری نونوار و مرتب داشتند. آقای یوشتا مرا سر میزم برد که در انتهای دور و متروک اتاق قرار داشت و خواهش کرد که بنشینم. سپس در حالی که خانم یوشتا کنارش ایستاده بود چند تا از پاکت ها را پاره کرد و گوشد. او و خانم یوشتا به شیوهی مخصوص چیزهای جور توی پاکت ها را وارسی میکردند. پد به ژاپنی مشورتی با هم می‌کردند و من که گویی تا حدودی جزئی لازم از اتاق بودم با کت و شلوار آبی و کراوات نشسته بودم و سعی می کردم صبور و در عین حال گوش به زنگ باشم یک مشت مداد نرم نقاشی که از نیویورک آورده بودم از جیب کُتم بیرون آوردم و به دقت روی میز گذاشتم تا سراس صدا نشود یک بار که آقای یوشوتا به دلیلی نگاهی به من انداخت نیشم را تا بناگوش باز کردم سپس آن دو ناگهان بیان که حرفی بزنند یا نگاهی به من بیندازند پشت میزهای خود نشستند و سرگرم کار شدند ساعت نزدیک هفت و نیم بود نزدیکی های ساعت 9، آقای یشت عینکش را برداشت بلند شد و با یک دست کاغذ آرام آرام به طرف میز من آمد یک ساعت و نیم بود که بیکار گرفته بودم نشسته بودم و سعی می کردم جلوی قاراگور شکمم را بگیرم نزدیک من که رسید زود از جا بلند شدم و برای آنکه قد بلندم با بی احترامی توی چشم نزند خودم را اندکی خم کردم دست کاغذی که با آورده بود به دستم داد و با مهربانی خواهش کرد که آنچه را کرده و به فرانسه نوشته بود به انگلیسی ترجمه کنم آقا تظیم کوتاهی کرد و آرام آرام به طرف میزش برگشت دسته مداد نرم نقاشی را به یک طرف میز کشیدم خودنویسم را بیرون آوردم و با دلی نسبتا شکسته سرگرم کار شدم آقای یوشوتا مثل خیلی از هنرمندان کار کشته نقاشی را درست به شیوه هنرمندان متوسطی یاد می داد که شم تدریز دارند او به یاری کاغذ شفاف طراحی خود یعنی با گذاشتن کاغذ گردبرداری روی نقاشی های دانشجو و تفسیرهایی که در پشت می مینوشت به دانشجوی با استعداد راه و رسم کشیدن یک خوک قابل تشخیص را در یک خوکدانی قابل تشخیص یا حتی یک خوک دیدنی را در یک خوکدانی دیدنی یاد می داد. اما اگر جان به جانش می کردی، نمی توانست راه کشیدن یک خوک زیبا را در یک خوک دانی زیبا به کسی بیاموزد که البته راه و رسم این کار حتی چیزی بود که دانشجویان خوبش هریسانه انتظار می کشیدند که با پست برایشان فرستاده شود لازم است اضافه کنم که سبب این کار آن نبود که خداگاه یا ناخداگاه دلش نمی خواست یا اصلاً حیفش می آمد که چیزی به کسی یاد بدهد بلکه چیزی برای یاد دادن در چنت نداشت من از این واقعیت تلخ ذرهی متعجب نشدم بنابراین فکر رها کردن آنچه را به ذهنم راه ندادم اما وقتی به جایی که مرا نشانده بودند باریک شدم و اینکه در ساعت نهار که با کندی از راه رسید گفتن که نباید کف دست های عرق کردم جایی از ترجمه ها را لک کند جمعیت خاطرم را از دست دادم از آنجا که باید همه چیز به زیان آدم دست به دست هم بدهد، خط آقای یوشتو نیز به زحمت خانده می شد. به هر حال، ساعت نهار که رسید، از پیوستن به خانم آقای یوشتو خودداری کردم. گفتم که باید به اداره پست بروم. آن وقت، تقریبا دوان دوان از پلکان به طرف خیابان سرازیر شدم، و بیان که بدانم به کجا می روم، راهی را در پیش گرفتم و به سرعت شروع به رفتن کردم. و از خیابانهای عجیب و غریب و نکبت بار سر درآوردم. به نوشگاهی رسیدم و پا به آنجا گذاشتم. و سرسری گفتم چهار تا ساسیس کانی آیلند و سه فنجان قهوه کمرنگ برایم بیاورند. در بازگشت به مدرسه دوستداران استادان دیرین به این فکر افتادم که آقای یشتا از چه چیز من خوشش نیامده که از صبح تا ظهر تنها کار مترجمی را به من واگذار کرده است. این موضوع را در سایه تجربه سرسری گرفتم و رها کردم اما کم کم دچار حراس شدم و با خود گفتم که نکند این فومانچوی پیر از همان ابتدا بو برده است که نه فقط علائق و اموالی که به خود نسبت دادم همه ساختگی بوده بلکه سبیل من نیز سبیل جوان 19 سال بیشتر نیست تصور اینکه این موضوع واقعیت داشته باشد برایم تحمل بود حتی کردم که در حق من بی انصافی شده است. آخر آدمی مثل من که سه مدال برده و دوست سمیمی پابلو پیکاسو بوده است که کم کم داشت باورم میشد حقیقت دارد مترجم باشد. این مجازات به هیچ وش با جرمی که مرتکب شده بودم نمیخواند. هرچه باشد سیبیل من با همی کم توپی سیبیل خود من بود و با چسب آن را نچسبانده بودم. همانطور که با عجله راهی مدرسه بودم، دستی از سر اطمینان به آن کشیدم. هرچه بیشتر به موضوع فکر می کردم، حرکت می کردم. تا اینکه سرانجام به دویدن پرداختم، گویی هر لحظه انتظار داشتم از اطراف سنگسار شدم. چند نهار خوردن من چهل دقیقه بیشتر طول نکشیده بود، به آنجا که رسیدم، خانم و آقای شطا پشت میزهایشان بودند و سرشان گرم کار بود، نه سرشان را بلند کردند و نه کردند که نشان دهد از ورودم با خبر شدند. عرق ریزان و نفس نفس زنان رفتم و سر جایم نشستم. یک یا بیست دقیقه سر جا خوشکم زده بود. و انوای لطیفه های دست اول را درباره پیکاسو در ذهن مرور می کردم تا اگر آقای یوشوتو از جایش بلند شد و بالای سرم آمد تا نقاب چهره مرا پس بزند برایش تعریف کنم. و اتفاقا هم از جا بلند شد و بالای سرم آمد. جلوی پایش بلند شدم. حتی سینم را پیش دادم و لطیفه تازه‌ای درباره پیکاسو در ذهن آماده کردم. اما همین که به من رسید، دچار وحشت شدم و لطیفه را یاد بردم. آن وقت آن لحظه را مناسب دانستم که به تحسین تابلوی پرواز مرغابی که بالای سر خانم آویزان بود بپردازم. با آب و تاب از آن تعریف کردم و گفتم توی پاریس مردی را می شناسم گفتم که آدم فلج پولداری است که حاضر از هر مبلغی برای خرید تابلو بپردازد گفتم که اگر آقای یوشوتا بخواهد بیدرنگ با او تماس میگیرم اما خوشبختانه آقای یوشوتا گفت که تابلو از آن اموزادی اوست که برای دیدن بستگانش به ژاپن رفته است آن وقت پیش از آن که مجال پیدا کنم اظهار تأسف کنم از من که آقای دومی اسمیت خطابم می کرد، خواهش کرد که چند نقاشی را تصیح کنم. به سر میزش رفت و سپاکت خالی بزرگ شکم برامده را با خود آورد و روی میز گذاشت. سپس همانطور که گیج و گول استاده بودم و مرتب سرتکان میدادم و دستم را رو روی جیب کتم که مدادها را دوباره جا داده بودم گذاشته بودم، آقای یشوتو شیوه چیز یاد دادن یا بهتر گفته شود، شیوه چیز یاد ندادن را توضیح داد پس از آنکه به سر میزش برگشت چندین دقیقه طول کشی تا حالم سر جا آمد. هر سه دانشجویی که در اختیار من گذاشته شده بودند انگلیسی زبان بودند. دانشجوی اول زن خانهدار بیست 23 ساله اهل تورانتو بود که نوشته بود نام حرفش بامبی کرامر است و از مسئولان مدرسه خواسته بود که به همین نام برایش نامه بنویسند از همیه دانشجویان جدید مدرسه دوستداران و استادان دیرین خواسته شده بود که پرسش نامه پر کنند و عکس خود را به پیوست بفرستند. خانم کرامر عکس 20 در 25 و پنج خودش را که خلخال به پاداشت و لباس شنای بدون بند پوشیده بود و کلاه سفید ملوانها را سرگذاشته بود فرستاده بود. توی پرسش نامه هنرمندان محبوبش را رامبراند و واددیزنی معرفی کرده بود. و نوشته بود که تنها آرزویش این است که روزی بتواند با آنها رقابت کند. نمونه‌های نقاشی را زیر عکس خود گذاشته بود و با گیره ی کاغذ به هم چسبانده بود. نقاشی‌هایش همه جالب بود. یکی از آنها فراموش نشدنی بود. این نقاشی فراموش نشدنی با آبرنگ زیبایی کشیده شده بود و رویش جمله خطای آنها را ببخشید به چشم می‌خورد. نقاشی سه پسر بچه را نشان میداد که در آبگیر عجیبی مشغول ماهیگیری هستند. کت یکی از آنها از تابلوی ماهیگیری ممنوع آویخته بود. پسری که از همه قد بلندتر بود و در قسمت جلو نقاشی شده بود، ظاهراً یک پایش نرمی استخوان و پای دیگرش جسام داشت و از همین رو خانم کرامر به عمد ناگزیر شده بود که پاهای پسر را اندکی جدا از هم بکشد. دانشجوی دوم من، عکاس مجالس بزرگان، پنجاه و شش ساله، اهل وین انتاریو بود به نام آر هاوارد ریچفیلد که نوشته بود سالها زنک سربهجان او کرده است که باید بازد و بند از راه نقاشی پول در بیاورد. هنرمندان محبوبش رامبراند، سارجنت و تایتان بودند و از سر توضیح اضافه کرده بود که بدش نمی آید به شیوه آنها نقاشی کند. نوشته بود که به جنبه هجو آمیز نقاشی بیش از جنبه هنری آن علاقه است و برای نشان دادن این اعتقاد خود تعداد زیادی ترها نقاشی رنگ و روغن فرستاده بود یکی از این نقاشیها که به گمانم اثر عمده او بود پس از گذشته سالها مانند قزلهای سوی دل یا بگذار را دل برصدا کنم همچنان در خاطرم مانده است نقاشی ارائه هجو آمیز داستان قماور و آشنای دختر پاک دامنی بود با گیسوانی ریخته بر شانه و سینه های بزرگ که توی کلیسا و درست در کنار محراب مورد حمله کشیش خود قرار گرفته است. لباس هر دو نفر آنها نامرتب بود. راستش کیفیت مهارتی که در نقاشی به کار رفته بود بیش از اشاره های آمیز آن مورد توجه من قرار گرفت. اگر نمیدانستم که بامبی کرامر و ریچفیلد هزارها کیلومتر دور از هم زندگی می کنند، سوگن میخوردم که بامبی کرامر چیزهایی از شگرد کار به ریچفیلد است.